جوان و به نام خالق ادب آفرین سلام و شب شما دوستداران ادب و فرهنگ به خیر و شاد کاامی. خاطراتمون خاطرات من خالی از افسانه های زیبا و شنیدنی نیست چه بسیار که گوش جان به افسانه های... دلشین پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگان و به طور کلی بزرگترهای خودمون سپردیم و در دنیای پر رمز و راز افسانه خوابهای هزار رنگ دیدیم در این مجال شبانه قصد داریم افسانه‌ای از سرزمین زیبای آذربایجان تقدیم شما کنیم به نام افسانه دختر لال برگرفته از کتاب افسانه‌های آذربایجان برگردان حمید بخشمند در روزگاران و گذشته خواهر و برادری با هم زندگی می‌کردند خواهر از نعمت سخن گفتن محروم بود او ساعتها گوشه آروم و افسرده حال میشست و به فکر فرو میرفت برادر از این بابت دلش به حال تنها خواهرش میسوخت و محبت و مهربونی های زیادی بون میکرد اما خواهرش همچنان افسرده حال بود آخر برادر تصمیم گرفت که ازدواج کند، هم خودش سر و سامونی بگیره و هم خواهرش توی خونه تنها نباشه. خلاصه برادر دختری رو انتخاب کرد و بعد از اینکه جشن عروسی مختصری بپا شد اونا زندگی تازهی رو شروع کردند کمی بعد از شروع زندگی مشترک زن کم کم به خواهر شوهرش احساس حسادت کرد. وقتی میدید که شوهرش که همون برادر دختر باشه به خواهرش محبت و توجه میکنه در دل ناراحت میشد و چیزی به زبون نمی آورد ولی کم کم طاقتش تاق شد و به فکر فرو رفت و پیش خودش گفت باید باید هرجوری شده این دختره رو از چشم برادرش بندازم. روزها و ماهها گذشت. و اونها صاحب فرزند شدند اما به دنیا اومدن بچه هم کینه و نفرت زن به خواهر شوهرش رو کم نکرد چرا که فکر میکرد همسرش باید تمام توجه و محبتش رو صرف فرزند خودش کنه نه کس دیگهی بنابراین دست به کار شد و به انواع اقسام حیله ها شد ولی هر بار تیرش به سنگ میخورد و برادر همچنان به خواهرش محبت و مهربانی نیکرد و زن چارهای جز تحمل این وضعیت نداشت اما بشنوید از اونجایی که مرد یه توتی زیبا و یه اسب سفیدیال داشت که به اونها علاقه زیادی داشت. روزی زن که مدام در فکر ای برای دور کردن خواهرشوهر خودش بود توتی بخت برگشته رو خفه کرد و وقتی مرد به اومد با ظاهری پریشون و غمگین به پیشوازش رفت مرد که زن رو آشفته حال دید با دستپاچگی گفت چی شده زن؟ اتفاقی برای خواهرم افتاده خواهرم سالمه؟ زن چهره در هم کشید و غرولون کنان گفت. خواهرم خواهرم خواهر طوریش نشده مرد با نگرانی پرسید پس پس چی شده؟ چراقدر آشفته ای زن؟ زن به ظاهر ریافی غمگینی به خودش گرفت و گفت دوده تو ب خواهرتونو کشت مرد از شنیدن این خبر به شدت ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد چرا که نمیخواست دل خواهرش رو بشکنه رو کرد به زنش و گفت اشکالی نداره خواهرم سلامت باشه زن با خرس گفت اون که چنان سلامته که نگو و نپرس و بعد شروع کرد به تحریک کردن مرد و گفت توتی قشنگی بود حیف که دیگه از دستت رفته تو به اون خیلی علاقه داشتی مرد که کمی آروم شده بود گفت آره ولی خوب اون که از خواهرم عزیزتر نبود زن گفت یعنی یعنی تو به همین راحتی از توتی دل کندی. لاغل یه چیزی به خواهرت بگو که دیگه دست به این کارای بیرحمانه نزنه مرد گفت دیگه گفتن یا نگفتن چه ای داره زن که دید حرفش کوچکترین تأثیری در شوهرش نداره زیر لب با خودش گفت بالاخره یه کاری میکنم که با دست خودت تو از خونه بیرون کنی موسیقی روزها گذشت تا اینکه روزی مرد برای شکار آهو به دشتهای دور رفت زن هم از فرصت استفاده کرد و به سراغ برادر خودش که در همسایگی دیونا زندگی میکرد رفت و شروع کرد به بدگویی از خواهر شوهرش و گفت ای برادر این دختر روزگارم رو سیاه کرده شوهرم اصلا به من و تنها من توجهی نداره و همش به فکر اون خواهر لالشه و بعد از برادرش خواست که به اون کمک کنه برادر که دلش به حال خواهرش سوخته بود و فکر میکرد زندگی خواهرش در حال نابودیه رو کرد به خواهرش و گفت قصه نخور خواهر من هر کاری از دستم بر بیاد برای تو انجام میدم و بعد از خواهرش پرسید خوب من باید چیکار کنم و خواهرش گفت تو باید اسب سفیدیال شوهرم رو به صحرا ببری و اونو سر نیست کنی برادرش با تعجب گفت ولی ولی شوهرت اون خیلی دوست داره زن گفت میدونم برادر جان میدونم من امدن میخوام که تو این کارو بکنی نقشه‌ای کشیدم که تنها راهش همینه برادرم پذیرفت و اسب سفید مرد رو به صحرا برد و سرش رو برید و در جایی سر کرد چند روز بعد مرد از شکار برگشت باز هم زن رو آشفته حال دید زن به دروغ بنای آه و ناله رو گذاشته گفت وای خدا وای خدا مرد تو چقدر تحمل داری باز هم خواهرت یه دسته گل دیگه آب داد مرد با ناراحتی گفت دیگه چی شده زن سری تكن داد و گفت اسب سفید یالت اسبت خواهرت سفارش کرد کی کسی بیاد و سرش رو ببره بله اسب سفید یالت رو خواهرت نابود کرد نابود نابود شوهر به خاطر اسب سفید یالش دلش به درد اومد اما باز هم چیزی از خودش بروز نداد و گفت یه اسب ارزشش رو نداره که به خاطر اون خواهرم رو برنجونم و دلش رو بشکنم فدای سرش زن که دید با این کار رو شوهرش رو فریب بده نخشه دیگه ای ردای اون روز زن بدجنس وقتی شوهرش به بازار رفت بچه رو برداشت و برد کنار شهر توی خونه پیرزنی که سالها اونو میشناخت و بهش مقداری پول داد و گفت ای مادر این بچه رو یه مدتی پیش خودت نگهدار گرفتارم گرفتار وقتی خلاصی پیدا کردم میام میبرمش پیرزن با خوشحالی گفت چشم دخترم چشم من همیشه دلم میخواست یه بچه داشته باشم خیالت راحت باشه من چند روزی اونو به فرزندی قبول میکنم و با دل جون ازش نگت داری میکنم زن بچه رو به پیرزن زن داد و گفت فقط مادر یادت باشه این راز رو با کسی در میون یا. کسی نباید متوجه بشه من بچه خودم و دست تو سپردم باشه مادر پیرزن زن به گفت چشم دختر مطمئن باش مطمئن باش زن از پیر زن خداحافظی کرد و به طرف خونه برافتاد. زن به محض اینکه به خونه رسید بنای گریه و شیون رو گذاشت مرد که از بازار برگشتید ناله و شیون همسرش به آسمون بلند شده با دستپاچگی پرسید چی شده چی شده چه مصیبتی اتفاق افتاده که این همه شیون میکنی زن چی شده زن گریه کنن گفت چه مصیبتی میخواستی اتفاق میافت به تحریک خواهرت. بچم رو سر به نیست کرده سر به نیست و بعد تهدید کنن گفت: من،, من از فتنه و فساد اون افریت چندین بار بهت خبر دادم اما تو گوش ندادی بلاخرم این بلا به سرمون اومد بعد هم شیوان کنان گفت: حالا حالا چه خاکی به سرمون کنیم مرد از دیمون تبا شده بچم بچه ی نازنین مرد که حرف زنش رو باور کرده بود از شدت خشم چشماش کاسیخ خون شد و با عصبانیت و نارتی گفت: برو برو به قوم خیشها خبر بده بیان خواهرم رو به جنگل ببرن و اونجا رهاش کنن تا تعمه یه حیوانات وحشی بشه زن که مدت ها بود در انتظار چنین فرصتی لحظه شماری میکرد به قوم و خواهر شوهرش سپر که دختر رو جایی ببرن و رها کنن که راه بازگشت نداشته باشه اونا هم دختر بیچاره رو به جنگل بردن و در گوشهی رها کرد بشنوید از دختر لال دختر لال وقتی خودش خودشو توی جنگل دور افتاده دید حیرون که چی کار کنه هرچی فکر کرد عقلش به جایی نرسید و ناچار راهی رو پیش گرفت و رفت و رفت و رفت سه روز و سه شب پی در پی راه رفت دیگه از شدت گرسنگی رمقی براش باقی نمونده بود در این موقع چشم دخترک به الفزاری که در اون نزدیکی بود افتاد افتان و خیزان خودشو اونجا رسوند و مقداری از الفها رو چید و خورد دختر که حالا کمی گرسنگیش رفت شده بود توی الفزار دراز کشید و به خواب امیغی فرو رفت ساعتی بعد که از خواب بیدار شد احساس کرد زانوهاش قوتی گرفتن بنابراین بلند شد و راهی رو پیش گرفت و شروع به رفتن کرد دختر لال همینجور که داشت میرفت یهو متوجه شد که خرگوشی کمی جلوتر از اون در همون را مشغول دویدنه با کنجکاوی قدم هاشو تندتر کرد و به دنبال خرگوش برافتاد خرگوش رفت و رفت تا به قصری که وسط جنگل بود رسید قصر باشکوه و مجللی بود و دختر لال ناباورانه مه تماشای اون رست شد دختر دید که در قصر باز شد و خرگوش داخل شد چند لحظه گذشت دختر مردد مون که اونم وارد قصر بشه یا نه در این لحظه دو نفر از قصر بیرون اومدن و دست دختر لال رو گرفتن و با خودشون به داخل قصر برد دختر لال بعد از اینکه از چهل پله قصر بالا رفت وارد اتاقی شد که عظمت و زیباییش اونو به حیرت واداشت دختر لال همچنان که قرق حیرت بود یه دفعه دید که دختر زیبایی بالای اتاق نشسته و با اشاره اونو به طرف خودش فرا میخونه دختر لال آروم و با اتیاد جلو رفت و کنار دست دختر زیبا رو نشسته دختر لال که کمی ترسیده بود با نگرانی به اطراف نگاه انداخت دختر زیبارو از دختر لال پرسید ببینم دختر جان اسم چیه؟ دختر لال با اشاره به دختر زیبارو فهمون که نمیتونه حرف بزنه و سال هاست که لاله دختر زیبارو لبخندی زد و گفت لال؟ نه تو دیگه لال نیستی چشمای دختر لال؟ از شنیدن این حرف به شگفتی نشست دختر زیبارو گفت دختر جان تو دیگه لال نیستی بله تو از وقتی که از اون الف ها خوردی زبونت باز شده حالا نترس حرف بزن دختر باور نمی کرد تردید داشت که امتحان کنه اما با وجود حیجان و دلهوری که داشت سعی کرد حرف بزنه و با خوشحالی دید که میتونه پرسید شما کی هستید و اینجا چیکار کار میکنید؟ دختر آهی کشید و بفت من دختر پادشاهی به اسم سام هستم وزیر و وکیل پدرم با تبانی به پدرم تهمت زدن و اونو کشتن و وقتی من خواستم پرده از این راز بردارم و قضیه رو برملا کنم اونا تصمیم گرفتم منو بکشن خرگوشی رو که تو جنگل دیدی جادوگر پدرم بود. اون که دید به من ظلم شده کمکم کرد و منو به اینجا آورد این قصر باشکوه رو هم که میبینی مال اونه. جادوگر همیشه به شکل خرگوش در میاد و به آدمای گرفتار رو مصیبت دیده کمک میکنه. دختر لال که حالا دیگه زبون باز کرده بود از شنیدن ماجرای دختر زیبارو متأسف متاسف شده و سرگذشت خودش رو برای اون بازگو کرد. از اون روز به بعد، اونا با هم دوست شدن و در کنار هم زندگی کردن روزها و ماها از این ماچه گذشت روزی برادر دختر لال برای شکار آهو به جنگل رفت و در اونجا راه رو گم کرد و در حالی که اسب میتاخت به همون قصر رسید. خدمتکارای قصر مرد راه گم کرده رو دیدن و اونو به داخل قصر دعوت کردن. دختر لال همین که برادرش رو دید اونو شناخت اما به روی خودش نیوورد. مرد شب رو تو قصر موند. وقت خواب هم توی همون قصر خوابی. نیمه های شب خواهرش آهسته اومد و در خورجین اسبش یه سیب ترا گذاشت و توی جیبش هم یه انگشتر و اون وقت آروم از اتاق خارج شد موقع رفتن به خدمتکارها گفت فردا صبح وقتی مهمون خواست بره حتما خورجین اسب و جیباشو خوب جستجو کنین و بعد مرخصش کنین صبح که شد برای مهمون صبحونه آوردن مرد سپونشو خورد و بعد از جا بلند شد و رو کرد به میزبان و گفت اگه اجازه بدین من دیگه مرخص بشم شما آدمایی خوب و مهربونی هستین در این لحظه خدمتکاری جلو اومد و گفت مهمان عزیز توی قصر ما یه سیب تلا و یه انگشتر گم شده مرد با تعجب پرسید یه سیب تلا و یه انگشتر خدمتکار گفت درسته حالا حالا اگه شما اونو برداشتین تا کار به جاهای باریک نکشیده اونا را تحویل بدین وگرنه جیباتونو میگردیم مرد با اطمینان خاطر گفت باشه باشه من حرفی ندارم شما میتونین جیبایی منو بگردیم خدمتگار گفت و اگه سیبه تلا و انگشتر پیش شما بود چی؟ مرد پوستندی زد و گفت دستور بدید گردنمو بزنن خدمت خدمتکارها در یک چشم به هم زدن از توی خورجین اسب سیب طلا رو بیرون آوردن و گفتن آه مهمان عزیز حالا چی میگی این سیب تلا توی خورجین شما چیکار میکرد مرد که بغز گلوشو گرفته بود با ناباوری و درماندگی گفت والا بلا روح من از این چیزا خبر نداره حتم حتما حتما کسی اون رو توی خورجین اصمم گذاشته اما کسی حرفش رو باور نکرد که نکرد و بعد جیباش هم گشتن و انگشتر رو هم از جیبش بیرون آوردن مرد که مات و مبهوت شده بود آهی کشید و گفت یا خدای این دیگه چه بلایی بود که من گرفتار اوم شدم در این لحظه خواهرش که ظاهرش رو تغییر داده بود جلو اومد و گفت مهمان عزیز ما حرف تو رو نمیتونیم باور کنیم دیدی که سیب طلایی و انگشتر پیش تو بود و این کار یعنی دزدی مرد با نارتی گفت باور کنین من اون سیب تلایی و انگشتر رو بر نداشتم حتماً،, حتما کسی خواسته با این کار به من تهمت و افترا بزنه در این لحظه دختر که حال زار برادرش رو دید دلش به رحم اومد و گفت ای برادر تو نتونستی منو بشناسی من اون سیب ترا و انگشتر رو توی خورجین و جیب تو گذاشتم مرد با تردید نگاهی به دختر انداخت و پرسید تو تو کی هستی دختر لبخندی زد و گفت من خواهر توام خواهری که زنت به اون تهمت و افترا زد و تو هم باور کردی من با این کارم میخاستم بتون نشون بدم که زن چه ای با من کرد مرد که گیج و منگ شده بود نگاهی عمیق به دختر انداخت و خواهرش رو شناخت بعد در حالی که از شدت تأثر و تأسف گریه میکرد به پاهای خواهرش افتاد و گفت خواهر جان منو ببخش من اشتباه کردم اشتباه خواهش میکنم منو ببخش خواهر دست برادرش رو گرفت و کمک کرد که بلند بشه بعد اونو به داخل قصف برد و تصمیم گرفت فردا به اتفاق برادرش به خونه برادر بره. فردای اونروز خواهر و برادر خوشحال به راه افتادند چند ساعتی که راه رفتن به خونشون رسیدند، زن که از دیدن خواهر شوهرش سخت متجب شده و ترس وجودش رو فرا گرفته بود با چاپلوسی به استقبال شوهرش اومد و گفت خوش اومدین خوش اومدین نمیدونین چقدر منتظر اومدنتون بودم. و رو کرد به خواهر شوهرش و گفت تو این مدت کجا بودی؟ نه خبری نه اطلاعی؟ آخه نگفتی ما نگران میشیم؟ شوهر که دیگه هنها یه زنش براش رنگی نداشت و میفهمید که اون چیکار کرده بر سرش فریاد کشید و گفت برکنار کنار بد ذات بیرم زود باش زود باش بگو بچه رو کجا قایم کردی وگرنه من الان زن که سخت ترسیده بود با لکنت زبون گفت نه نه نه نه, نه سخت من, من, من تقصیل نداشتم همش تقصیر برادرم بود اون گفت نه من, من تقصیل نداشتم اون مرد كلام اونو کرده کرد و گفت گفتم بچه کجاست زن که دید چاری جز گفتن نداره و حقیقت روشن شده گفت که بچه رو پیش پیرزنی از اخوام گذاشته مرد بلافاصله به نزد پیر زن رفت و بچه رو گرفت و به خونه آورد و به خواهرش گفت از امروز دیگه این بچه به دست تو سپرده میشه و بعد زن بد رو به جنگل برد و در اونجا رها کرد و گفت اون که کاشتی حالا درو کن بله بالاخره آتش حسادت و تهمت زدن دامن خودش رو هم گرفت افثانه دختر لال رو از سرزمین آزربایجان براتون نقل کردم افسانهها ها تأثیر زیادی در روند زندگی ما داشتن از همون دوران کودکی عادت به داستان خوندن رو در ما به وجود آوردن و تخیل ما رو گسترش دادن و به ما حکمتهای زیادی آموختند بزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله فور ویراستار افسانی گربانزاده اجرا مهران دوستی صدابردار حامد کریمی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدروده